داستان دختر شاه پریان نوشته لورد دانسنی ترجمه دکتر آرش حجازی ارائه شده در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش بانوبنفش 5 صفحه چهل و هفت بخش پنجم خردمندی شورای ارل در آن روزهای عروسی مردان ارل اغلب برای شادباش گفتن و هدیه آوردن به قلعه می‌آمدند و هنگامی غروب درباره چیزهای دلپذیری سخن می گفتند که برای دره ارل آرزو داشتند و در آن اتاق دراز سرخ از فرمانروای پیرشان خواسته بودند نارل آهنگر کسی که رهبریشان کرده بود گوهیک زاره چراگاه های شب نزدیک ارل که نخستین بار پس از صحبت کردن با همسرش به این موضوع اندیشید نهیک راننده اسب چهار قصاب و اوس، شکارچی گوزن و ولل شخمزن بزرگ جمع شده بودند همه آنها و سه مرد دیگر به نزد فرمانروای ارل رفته بودند و آن تقاضایی را کرده بودند که آلوریک را به سرگردانی انداخته بود و اکنون از تمام نتایج خوب آن سخن می گفتند. همه می خواستند در ارل بین انسان شناخته شود چرا که احساس می کردند دور افتاده است در کتاب های تاریخ نگاه کرده بودند در هنگام کار در چراگاه ها کتاب های بسیاری خوانده بودند اما به ندرت چیزی درباره دره محبوبشان یافته بودند و یک روز گوهیک گفته بود بگذارید ما مردم در آینده فرمانروایی جادویی داشته باشیم و او نام دره را مشهور خواهد کرد و دیگر کسی نخواهد بود که نام ارل را نشنیده باشد و همه موافقت کرده بودند و شورای تشکیل داده بودند و شورا شامل دوازده مرد به نزد فرمانروای روای ایر رفتند و چنان شد که گفتم بنابراین اکنون در کنار جامهای شرابشان از آینده ارل و از جایگاهش در میان سایر درهها و از اشتهاری که باید در جهان بیابد سخن میگفتند در کارگاه آهنگری بزرگ نارل دیدار میکردند و سخن میگفتند و نار از اتاق درونی برایشان شراب میآورد و ترل از سر کارش در جنگل دیر میآمد. شراب از شهد شبدر بود، سنگین و شیرین و هنگامی که مدتی در اتاق گرم مینشستند، از چیزهای روزانه دره و زمینهای بالای آن سخن میگفتند. شراب ذهنشان را به آینده بر و از میان مهی زرین شکوه ار را می دیدند. که یکی از گوش تعریف می کرد، دیگری از عصب ها، یکی دیگر از خاک خوب و همه به زمانی مینگریستند که سرزمین های دیگر دره ایرل را برتر از همه دره ها خواهند دانست. و همان زمان که با خود این غروب ها را می آورد، در حالی که بر فراز دره ایرل و تمام دشت هایی که می شناسیم می گذشت، آنان را نیز فرسوده می کرد. و بار دیگر بهار رسید و فصل استکانیهای آبی و یک روز در اوایل دوران رویش خطمیهای وحشی گفته شد که آلوریک و لیرازل پسری پیدا کردند. شب بعد تمام مردم ارل آتشی بر تپه برافروختند و در کنار آن رقصیدند و شراب نوشیدند و شادی کردند تمام روز از جنگلی وحشی در نزدیکی آنجا هیزم آورده بودند و درخشش آتش در سرزمین های دیگر دیده میشد تنها بر فراز چکادهای آبی روشن کوههای سرزمین پریان هیچ نوری از آن نمیتابید چرا که آن چکادها با آنچه در اینجا رخ میدهد تغییری نمیکنند و هرگاه که از رقص در کنار آتش خسته و مشغول استراحت می بر روی زمین می نشستند و خوشبختی ایل را هنگامی که زیر فرمان پسر آلوریک و جادوی مادرش در میآمد پیشگویی می کردند. برخی می گفتند او آنها را به جنگ رهنمون خواهد شد و برخی می گفتند به کشاورزی بیشتر و همه بهای بیشتری را برای گوشت پیشگویی میکردند. آن شب هیچ کدام نخوابیدند، و تا صبح مشغول رقصیدن و پیشگویی کردن آینده شکوهمند بودند و از پیشگویی خود لذت میبردند و از همه مهمتر از این لذت می بردند که از آن پس نام ارل باید در سرزمین های دیگر شناخته و به آن احترام گذارده شود. سپس آلوریک در تمام دره و زمینهای های بالایش پرستاری برای کودکش جستجو کرد و به آسانی نتوانست پرستاری سزاوار نگهداری از کودکی از راسته سلطنتی سرزمین پریان بیابد و کسانی که یافت از نوری که انگار از زمین یا آسمان ما نبود و گاهی در چشمهای کودک می‌درخشید درخشید و سرانجام یک بامداد طوفانی به بالای تپه جادوگر تنها رفت و او را دید که بی حوصله در درگاه خانهاش نشسته و چیزی برای تلسم یا حفاظت کردن ندارد جادوگر گفت خوب، آیا شمشیر برایت خوشبختی آورد آلوریک گفت چه کسی میداند چه خوشبختی میآورد ما که فرجام را نمیبینیم و با فرسودگی سخن گفت چرا که از گذر زمان فرسوده بود و هرگز ندانست در آن روز که به سرزمین پریان سفر کرد چه سالهای بسیاری بر او گذشت چون این می که بسیار بیشتر از زمانی که در همان روز بر ایرل گذشته بود از زندگی او سپری شده بود جادوگر گفت آی چه کسی جز ما پایان را میداند؟" آلوریک گفت ننه جادوگر من با دختر شاه پریان عروسی کردم جادوگر پیر گفت موفقیت بزرگی بود؟ آلوریک گفت ننه جادوگر ما فرزندی داریم چه کسی از او محافظت خواهد کرد؟ جادوگر گفت کار هیچ انسانی نیست آلوریک گفت ننه جادوگر آیا به درگ ارل می و از او نگهداری می کنی و پرستار قلعه می شوی؟ چون در تمام این دشتها فقط تو درباره سرزمین پریان میدانی و شاه دخت که او هم از زمین چیزی نمی داند و جادوگر پیر پاسخ داد به خاطر شاه می آیم بنابراین با مجموعه ای از اشیاء غریب از تپه پایین آمد و بدین ترتیب کودک در دشتهایی که می شناسیم به دست کسی پرستاری شد که ترانه ها و داستانهایی درباره سرزمین مادریش می دانست. و اغلب جادوگر پیر و شاهدخت لیرازل به هنگام خم شدن بر روی بچه و پس از آن در شامگاه های دراز با یکدیگر از چیزهایی سخن می گفتند که آلوریک از آنها هیچ نمی دانست. و بی تردید در این میان جادوگر بود که به خاطر سنش و خیردی که در طی صد سال زندگیش اندوخته بود یاد میداد و شاهدخت لیرازل بود که می آموخت. لیرازل هرگز چیزی درباره زمین و شیوه های زمین یاد نگرفت. و جادوگر پیر به هنگام پرستاری کودک چنان از او مراقبت و دلجویی می کرد که در سراسر دوران کودکیش هرگز اشکی نریخت چون جادوگر افسونی برای درخشان کردن صبح و افسونی برای شاد کردن روز و افسونی برای فرونشاندن نشاندن و افسونی برای گرم و دل پذیر کردن کودکستان داشت و هنگامی که شعله جادو شده آتش زبانه می کشیدند و از اشیای پیرامون خود سایه های عظیم تیره و لرزانی را بر سقف می انداختند افسونی داشت که می توانست ترس از آتش را فرو نشاند و کودک به دست لیرازل و جادوگر همان گونه مراقبت میشد شد که فرزندان یک مادر انسان نگهداری میشوند اما افزون بران افزونها و نغمه هایی می دانست که کودکان دیگر در دشتهایی که می شناسیم اند. بدین ترتیب جادوگر پیر با عصای سیاهش در اطراف کودکستان راه می رفت و با افسونهایش از کودک نگهداری می کرد. اگر در شبهای طوفانی بادی از راه ترکی به درون می آمد، تلسمی برای آرام کردن آن و تلسمی برای افسون کردن ترانه کتری داشت و آن را چنان افسون می کرد که آهنگش نشانه هایی از اخبار غریب های نهفته در مه به همراه می آبرد. و کودک، اندک, اندک راز در دوردست هرگز ندیده را آموخت و در شامگاه جادوگر ترکه آب را بلند می‌کرد و در میان تمام سایه ها در برابر آتش می و سایه ها را وادار می‌کرد برای کودک برقصند و سایه های رقصان انواع شکل های خوب و بد را به خود می‌گرفتند تا کودک را شاد کنند به دین ترتیب کودک نه تنها چیزهایی را شناخت که زمین با آنها پا برجاست خوکها، شترها، تمساها، گرکها، اردکها سگهای خوب و گافهای آرام بلکه از وجود چیزهای تیره تری هم آگاه شد که انسانها از آنها ترسیده بودند و یا آرزو داشتند یا حدسش را زده بودند در آن شامگاهها آنچه رخ میداد و موجوداتی که وجود داشتند بر دیوار کودکستان ظاهر میشدند و او با هایی که میشناسیم آشناتر میشد و جادوگر در بعد از ظرای گرم او را به میان ده میبرد و همه سگها با دیدن چهره ترسناکش پارس میکردند اما جرأت نداشتند نزدیک بشوند چرا که پسر که خدمتکاری اصای آبنوس را به دنبال آنها می و سگها که بسیار می دانند که می دانند انسان تا چه فاصله ای می تواند یک سنگ را پرتاب کند می دانستند که این یک اصای معمولی نیست بنابراین از آن عصای سیاه مزهک در دست آن خدمتکار فاصله می گرفتند و خرناس می کشیدند و روستاییان بیرون می تا ببینند و هنگامی که پرستار جادوین ولی عهد جوانشان را میدیدند، شد شاد می شدند و می گفتند چون جادوگر زیروندرل اینجاست سگها پارس می کنند و می گفتند جادوگر او را در میان اصول حقیقی جادو بزرگ خواهد کرد و در زمان خودش جادو در ریشان را مشهور خواهد نمود و سگهاشان را می زدند تا به درون خانه بروند اما سگها به بدگمانیشان وفادار می ماندند. بنابراین هنگامی که مردها به کارگاه آهنگری نارل رفته بودند و خانههاشان در محتاب خاموش بود و پنجره های خانه نار می‌درخشید و شراب دور چرخیده بود و از آینده ارل سخن می‌گفتند و دم بدم صداهای بیشتری به گفتن داستان شکوه آینده می سکها پا به جاده شنی میامدند و زوزه میکشیدند. ولی رازل به کودکستان در بالای برج میامد و با خود درخشش میآورد که جادوگر در هیچ یک از تل اسمهایش نداشت و برای پسرش ترانه هایی را میخواند که هیچ کس در اینجا نمیتواند برای ما بخواند. چرا که در آن سوی جپه شفق آموخته میشوند و به دست خانندگانی ساخته میشوند شوند که از گذر زمان آزرده نشده اند ترانه ها در روزهای تابستانی از پنجره های باز قلعه بیرون می رفتند و بر فراز ایرل تنین می انداختند و مردم را شگفت زده می کردند چرا که از جایی بسیار دور از دشت هایی که می شناسیم می آمدند و بسیار کوهندتر از زمانهای بکار رفته توسط تاریخ نگاران بودند؟ اما شگفتزدگی هیچ کدام به اندازه شگفتزدگی لیرازل از دیدن رفتارهای زمینی روزفزون فرزندش نبود و اما کودکش را بیشتر از تمام قلم روی پدرش یا صده درخشان جوانی بیزمانش یا کاخی که تنها در ترانه ها میتوان از آن گفت دوست داشت. آلوریک آن روزها دریافت یافت که او هرگز با رفتارهای زمینی خونه خواهد کرد. هرگز مردمی را درک نخواهد کرد که در دره میزیستند هرگز کتابهای خیردمندانه را بیخنده نخواهد خواند هرگز به شیوه های زمینی اهمیت نخواهد داد. هرگز در قلعه ارل بیشتر از هیچ کدام از موجودات جنگلی که تر به دام میانداخت. و در قفس نگاه می‌داشت، احساس راحتی نخواهد کرد امیدوار بود به زودی کارهایی را که برایش غریب است بیاموزد و دیگر تفاوتهای کوچک دشتهای ما با سرزمین‌های پریان آزارش ندهند اما سرانجام دریافت که چیزهای غریب همواره چنین باقی میمانند و سدههای بیزمان موتن او اندیشه ها و تخیلات او را آن اندازه سست شکل نداده بودند که با سالهای کوتاه ما در اینجا دگرگون شود هنگامی که این را دریافت حقیقت را دریافته بود فاصله بین روانهای آلوریک و لیرازل به درازای از اینجا تا سرزمین پریان بود و عشق بر روی این درازا پل میزد ایش که میتواند بر درازایی از این بیشتر نیز پل بزند اما گاهی یک دم بر روی این پل زرین مکس می میکرد و میگذاشت اندیشه هایش به پایین و به خلیج بنگرد و تمام ذهنش تیر و تار میشد و لرزه بر تنش میافتاد می اندیشید که پایان چه خواهد شد و می ترسید مبادا غریبتر از آغاز باشد ولی رازل، لی رازل متوجه نمیشد که باید چیزی بداند، مگر زیباییش کافی نبود، مگر سرانجام عاشقی به آن سبززارهای درخشان در کنار کاخی نیامده بود که تنها در ترانه ها از آن گفتند، و او را از سرنوشت بیرحم و آرامش ابدیش نجات نداده بود، مگر آمدن او کافی نبود؟ مگر مجبور بود کارهای غریبی را جرق کند که مردم انجام میدادند آیا هرگز نمی بایست در جاده ها به با بوزها صحبت کند در مراسم عزاداری بخندد شبهنگام آواز بخواند چرا در لذت چه چیزی بود که می بایست پنهان میشد آیا در آن دشتهای غریب شادی می بایست در برابر کسالت کمر خم می کرد؟ و روزی دید که چگونه زنی از ارل کمتر از سال پیش زیباست. تنها اندکی تغییر کرده بود، اما چشمهای تیزبین لیرازل آن را دید و گریان و در جستجوی آرامش به نزد آلوریک رفت. چرا که می‌ترسید مبادا در دشتهایی که می‌شناسیم زمان بتواند به آن زیبایی آسیب برساند که اعثار دراز, دراز دراز سرزمین پریان، هرگز جرأت نکرده بودند به آن بینگرند و آلوریک گفته بود همان گونه که همگان می دانند زمان باید راهش را طی کند و حاصل شکایت چیست سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رو ها و برکه های جادویی قصر های باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه اسهایی از سفر های دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزاده ها و شاهان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 ادساین مهران دوستی